عزیزان به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. امروز ما درس مخصوص خودمون رو ادامه میدیم که برای کمک به درک بهتر شما از مهمترین کتاب جهان کلام خدا کتاب مقدس تراحی شده. متشکرم که ترتیبی دادین هر روز به ما ملحق بشین تا به اتفاق هم به طور منظم کتاب مقدس رو مطالعه کنیم و یاد بگیریم که چطور حقایق اون رو در زندگیمون به کار بگیریم این کلاس با همکاری دانشگاه کوچک کتاب مقدس به شما فرصت میده که کتاب مقدس رو مانند دوره‌ای در دانشکده کتاب مقدس مطالعه کنید. حالا معلم ما اینجا به ما کمک میکنه که بسیاری از مطالب سخت کتاب مقدس و موضوع اصلی اون رو درک کنیم که همان بازخرید انسان گناهکار توسط خداست حالا به درس دو گوش کنید سلام، موضوع درس امروز ما هدف کتاب مقدس است همونطور که عیسی چیزی از کتاب مقدس به رسولان گفت که ادراک اونها رو برای فهم کلام خدا برای اولین بار باز کرد ما میخوایم قبل از اینکه این و 66 کتاب کتاب مقدس را بررسی بکنیم حقایقی از کتاب مقدس رو با شما در میون بذاریم و امیدواریم کتاب مقدس رو برای شما باز کنه و به شما کمک کنه در این دوره بررسی کتاب مقدس رو درک کنید. به کلاس دیگری از دانشکره کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. جایی که میتونید عضوی از مهمترین دوره تحصیلی دنیا بشید. چون ما در حال فراگیری مهمترین کتاب دنیا یعنی کتاب مقدس هستیم. میخوام الان بعضی از اون حقایق رو که عیسی به رسولان ارائه کرد به شما بگم. در باب 24 روم لغا شما کلمات خیلی جالبی رو خوندید ویاد داشته باشید داریم راجب دیدگاهمون از کتاب مقدس حرف میزنیم که به ما کمک میکنه کلام خدا رو بفهمیم. عیسی از مردگان برخواسته بود و با دو نفر از شاگردان در راه اماوس میرفتند. رفتند. اونا ایسا رو نشناختند. عیسی میدونست اونا به خاطر مصلوب شدن کسی که امیدوار بودن مسیح باشه خیلی آشفته و محزون بودن و اونا رو به خاطر عدم آگاهی از کتاب مقدس اینگونه توبیخ میکنه. ای بیخردان که دلی دیرفهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید آیا نمی بایست مسیح این رنجها را ببیند و سپس به جلال خود درآید حالا به این گوش کنید بعد عیسی باب به باب, باب از نوشته های انبیا را به اونا گفت از کتاب پیدایش شروع کرد و همینطور از تمامی کتاب و مقدس براشون شرط داد که درباره او چه گفته بودن. بعد به اونا گفت یادتون نمیاد که گفتم هر چیزی که درباره من توسط موسی و انبیا و در مزامیر نوشته شده باید تحقق پیدا کنه بعد های اونها رو باز کرد تا بالاخره این همه آیات رو بفهمن. حقیقتی که عیسی درباره کتاب مقدس با شاگردان در میون گذاشت که کلام خدا رو برای اونها باز کرد چی بود دقیقا این بود تمام کتاب مقدس مربوط به منه اون یگانه‌ی حقیقتی بود که کتاب مقدس رو برای شاگردان باز کرد در باب پنجم انجیل یوحنا آیات 39 و چهل او همون چیز رو به رهبران مذهبی زمان خودش میگه اونا با او برسر اظهاراتش که در مورد هویت خودشون میگفت بحث میکردند او گفت اگه شما واقعا به دنبال شواهد هستید فاقد شواهد نیستید و بعد شواهد زیادی برای اونا ذکر میکنه از جمله شهادت یحیای تعمید تعمیددهنده که کاملا عیسی رو تصدیق میکرد سخنان پدر در موقع تعمیدش معجزاتی که به عمل آورده بود او گفت شما متخصصین کتب مقدس همیشه کتاب مقدس رو میکاوید زیرا فکر میکنید با متخصص کتاب مقدس شدن حیات ابدی خواهید یافت به اونا گفت در حالی که همین کتاب ها بر من شهادت میدهند اما شما نزد من نمی تا بتونم به شما حیات ابدی بدم همین یک جمله که تمام کتاب مقدس بر من شهادت میدهند اسوال چمبرز میگه این آیه کلیدی برای تمام کتاب مقدسه اون جمله به ما نشون میده مفهوم کلی کتاب مقدس چیه؟ کل کتاب مقدس مربوط به عیسی مسیح است. این حقیقتی راجع به کتاب مقدسه که عیسی با رسولان در میون گذاشت و کتاب مقدس رو برای اونها باز کرد. اون تمام کتاب مقدس رو براشون باز کرد. چهار منظور از کتاب مقدس هست که میخوام همین الان اونا رو با شما در میون بذارم. اولین منظور از این چهار تا اینه. معرفی کردن عیسی مسیح به عنوان ناجی و آزاد کننده این جهان این نخستین هدف کتاب مقدسه برای اینکه عیسی را به عنوان ناجی و کننده جهان به ما معرفی کنه برای اینکه در عهد قدیم به ما بگه عیسی خواهد آمد و برای اینکه در عهد جدید بگه عیسی آمد کتاب مقدس طبعا میخواد زمینه تاریخی رو که عیسی در اون اومد به ما معرفی کنه حالا هدف دوم کتاب مقدس اینه که سوابق کننده و داستان بازخرید رو به ما معرفی کنه و یا سوابق منجی و نجاتی رو که به واسطه او پدید آمد معرفی کنه. اینجا مطلب جالبی راجع به کتاب مقدس هست. وقتی بهش نگاه می‌کنی، توجه کنید چقدر فضا برای موضوعات مختلف در کتاب مقدس اختصاص یافته فکر می‌کنم این به ما درکی از هدف و منظور کتاب مقدس خواهد داد. چه چیزی هدف است و چه چیزی نیست؟ برای مثال به چهار زندگی عیسی در عهد جدید نگاه کنید متا مرقس لغا و یوحنا اگه تعداد بابهای اون چهار کتاب رو جمع کنید به عدد هشتاد و نه میرسید هشتاد و نه باب در چهار انجیل وجود داره از این هشتاد و نه باب چهار انجیل چهار باب از اونها تولد و سی سال اول زندگی عیسی رو دربر میگیره هفتاد و پنج باب از این بابها سه سال آخر زندگی عیسی رو دربر میگیره بیست و هفت باب از اونها شامل آخرین هفته زندگی عیسی مسیح است همینطور که اناجيل یا زندگی نامه های عیسی زندگی عیسی رو به ما معرفی می‌کنن ببینیم کدام عرصه از اون زندگی برای نویسندگان اون کتاب‌ها مهم بوده تولد او و سیسال سال نخست زندگی او یا 3 سال خدمات عمومی او مخصوصاً اون هفته آخر وقتی که او به خاطر گناهان ما بر صلیب مرد و از مردگان قیام کرد اگه مقدار فضایی رو که اون چهار انجیل به های مختلف زندگی عیسی اختصاص داده ملاحظه کنید خیلی سخت نیست که به این نتیجه برسید که آخرین هفته ی زندگی او هفت مرتبه مهمتر از تولد او و سیسال سال اول زندگی او هست. ما کریسمس رو مهم میدونیم کتاب مقدس مرگ و قیام عیسی رو مهمتر میدونه. انجیل یوحنا حدود نصف باپاش رو به تولد و سی سال اول زندگی و سه سال آخر زندگی و خدمات عمومی عیسی اختصاص داده. نصف دیگه از انجیل یوحنا به یک هفته آخر زندگی عیسی اقتصاص جافته. یوحنا تقریبا انجیلش رو به دو قسمت تقسیم کرده، یک قسمت شامل سی سال اول زندگی او به علاوه سه سال خدمات عمومی او هست، نصف دیگه از انجیل یوحنا یک هفته رو دربر میگیره. ما اون رو هفته مقدس میکیم. پس تو این زندگی که به ما گزارش داده شده چی مهمه؟ انجیل فقط زندگی نامه نیستن. اونا زندگی نامه هستند. راجب زندگی نامه ابراهام لینککنن یا هر شخص مشهوری در تاریخ چی فکر میکردید ا اگر از تولد و سی سال اول زندگیشون صحبتی به میون نمیوممد. دو تا از اناجیل حتی به تولد عیسی یا سی سال اول زندگیش اشاره هم نکردن. ببینید این زندگی نامه ها نوشته شدن تا چیزی بگن. اونا سعی دارند به ما بگن عیسی آمد و به این دلیل آمد. او به خاطر اون یک هفته اومد که طیه اون به خاطر گناهان ما مرد از مردگان قیام کرد تا اینکه ثابت کنه او کسی بود که ادعا می کرد هست خدا برای اینکه بفهمید کتاب مقدس چه میزان فضا به موضوعات مختلف اختصاص داده به این توجه کنید 1989 باب در کل کتاب مقدس هست 11 باب از این 1189 باب به تاریخ جهان اختصاص داره تاریخ زمین تاریخ انسان تاریخ مرد تاریخ زن تاریخ زبان تاریخ شریر تاریخ تمام مردمان متمدن که خدا میخواد به ما بگه، همه اینها به طور خلاصه یازده باب نخست رو به خودش اختصاص داده. در کتاب پیدایش وقتی وارد باب دوازده میشید، با مردی مواجه میشید به نام ابراهیم. از پیدایش باب دوازده شروع میشه و تا باب بیست و مکاشفه که 1178 باب هست ادامه داره. همه این باب ها به ابراهیم و فرزندان او هست. بخصوص فرزندی که به واسطه او تمامی قومهای زمین برکت یافتن، مسیح عیسی کتاب مقدس در واقع بر دو هزار سال از تاریخ قوم یهود متمرکز شده. مقصود کتاب مقدس این نبوده که به منزله یک کتاب درسی در باب خلقت به ما از نحوه آفرینش جهان و وضعیت کنونی جهان آگاهی بده. چطور زمین پیدا شده و یا چطور انسان به اینجا رسیده؟ اون کتاب تاریخ تمدن هم نیست. کتاب مقدس به دنبال یه چیزه. و به اون میپردازه، بیش از اون چه به اون دوازده باب اول پرداخته، اون علاقمند به نجاته، اون علاقمند به آزادسازیه. اون در صدد به ما بگه نجات چطور حاصل شد، ناجی چگونه آمد، باز خرید کننده چطور آمد، پس خیلی سریع به ابراهیم میرسه و از ابراهیم به مسیح. این مفهوم کلیه کتاب مقدسه. اونا تاریخ دو هزار سالی هستن که کتاب مقدس توجه خودش رو به اونها معطوف کرده. سهمین مثال از مقدار فضایی که به موضوع خاصی اختصاص یافته میتونه این باشه. به مقایسه حجم عهد جدید و عهد قدیم توجه کنید. عهد جدید 260 باب داره، عهد قدیم 929 باب داره. از اونجایی که خدا در میزان فضایی که به موضوعات خاصی اختصاص داده خیلی دقیقه، فکر نمی کنید ممکنه یا بدیهیه که او مطالب بیشتری در عهد قدیم میگه چون اونجا 929 باب به ما داده. عهد جدید 206 باب داره با این حال خیلی ها هستن که میگن من به عهد قدیم زیاد علاقمن نیستم. عهد قدیم که کتاب مقدس قدیمه من اهمیت چندانی به اون مطالب نمیدم فقط عهد جدید رو به من بدید. وقتی عهد قدیم رو بررسی میکنیم و بعد عهد جدید رو بررسی میکنیم اغلب کسانی رو داریم که میگن به من بگید کی به عهد جدید میرسید. اون موقع من به شما ملحق میشم. من به عهد قدیم علاقه چندانی ندارم. من شخصا بر این باورم که کلام ناب خدا هست و حقیقت اینه که در 929 باب عهد قدیم خدا حرفای خیلی زیادی به ما گفته و واقعا و حقیقتا امیدوارم که عهد قدیم کتاب ای برای شما نباشه اینها مطالبی بود که عیسی با رسولان در میان گذاشت تا ادراک اونها را برای فهم کلام خدا باز کن دوباره به قول پولس رسول هدف بعدی و هدف خیلی مهم کتاب مقدس اینه خدا کتاب مقدس رو به وسیله الهام به ما داده تا اینکه مردان خدا کامل بشن تماما برای هر کار نیکی که خدا میخواد انجام بدن تجهیز بشن یک برداشت خیلی واقعی دیگه هست که طبق اون میتونیم بگیم کتاب مقدس برای غیر ایمانداران نوشته نشده کتاب مقدس برای مردان و زنانی نوشته شده که واقعا میخوان مردان و زنان خدا باشن خدا خیلی علاقمنده که شما یه مرد خدا باشید یا یه زن خدا خدا کاری داره که میخواد شما انجام بدید که به او جلال بده. و به منظور تجهیز شما برای انجام این کار خدا 66 کتاب کوچک آسمانی به شما داده که پر از حقایقیه که او میخواد شما بدونید آخرین منظوری که ما در کتاب مقدس واقعا قابل استناد برای غیر ایمانداران یافتیم در انجیل یوحنا هست وقتی یوحنا انجیل چهارم رو را نوشت، گفت شاگردان عیسی او رو دیدند که معجزات زیادی به ظهور رسانید که در این کتاب نوشته نشده است. اما اینها نوشته شد تا ایمان آورید که عیسی همان مسیح پسر خداست و تا با این ایمان نجات آورید یوحنا 20 31 یوحنا میخواست که ما حیات ابدی داشته باشیم که به معنی کیفیت و سطحی از حیات هست که خدا برای ما در نظر گرفته و از این رو یوحنا میخواد ما بدونیم که عیسی آمد و میخواد که بدونیم عیسی چیه در ضمن میخواد ما بدونیم ایمان چیه و از این رو گفته من این چیزها رو درباره عیسی نوشتم تا شما که ایمان ندارید با خواندن معجزات و آیاتی که عیسی ظاهر کرد ایمان بیارید که ایسایی که در کتاب آمده همون مسیح است اگه به او ایمان بیارید چیزی براتون اتفاق میافته و در نتیجه اون اتفاق حیات ابدی خواهید یافت این تنها کتاب از 66 کتاب در کلام خداست که از هر جهت خطاب به ایماندارانه فکر میکنم میتونیم آخرین منظور رو با گفتن چیزی مثل این خلاصه کنیم بر طبق کتاب مقدس خدا فقط یک پیغام به غیر ایماندار داره و اون پیغام اینه توبه کنید و به انجیل ایمان بیارید بعد از اینکه یک غیر ایماندار توبه میکنه و ایمان میاره خدا 66 کتاب کوچک مقدس پر از حقایق برای اون ایماندار داره پس چهار منظور برای کتاب مقدس هست معرفی کردن عیسی مسیح معرفی کردن سوابق تاریخی عیسی مسیح ایمان آوردن یک غیر ایماندار به عیسی مسیح و اینکه یه ایماندار بتونه کامل تر بشه. حالا میخوام فقط یه کمی راجع به تاریخچه کتاب مقدس براتون بگم. نمیدونم میتونید به این ها جواب بدید کسانی که این کتاب‌های کتاب مقدس رو نوشتن چه کسانی بودن؟ در چه زمانی اون کتاب‌ها رو نوشتن؟ کجا اون کتاب‌ها رو نوشتن؟ به چه زبانی اون‌ها رو نوشتن؟ آیا نسخه های دست نوشته اصلی هیچ کدوم از این کتاب‌ها رو داریم؟ چه کسی این کتاب‌ها رو برای ما حفظ کرده؟ چه کسی این کتابها رو به زبان ما ترجمه کرده؟ چه کسی این کتابها رو گردآوری و تدوین کرده و اونا رو به صورت مجموعه در کتاب مقدس گرد آورده؟ کی اجازه داده این مردان این رو تدوین بکنن؟ این تدوین کی صورت گرفته؟ چه کسی این کتابها رو جمع‌آوری و به صورت امروزی منظم کرده؟ سوالات زیادی از این قبیل هستند که مردم از شما درباره کتاب مقدس خواهند پرسید و اگه شما به اونا بگید که کتاب مقدس رو بررسی کردید و یک دانشجوی جدی کتاب مقدس هستید، گمون می‌کنم اونا از شما توقع خواهند داشت یک کمی جواب این سوالات رو بدونید. برای اینکه بتونید به بعضی از این سوالات جواب بدید، دوست دارم قبل از هر چیز به نویسندگان کتاب مقدس بپردازیم. چه کسی کتاب مقدس رو نوشت؟ قبلا گفته ایم که خدا این کتاب رو نوشت. منظور ما چیه وقتی به تعلیف الهی این کتاب اشاره می‌کنیم؟ ما تا حدی قبلا به این سواب با استفاده از کلمه الهام جواب دادیم توسط معجزه الهام خدا مردانی رو برانگیخت تا این کتاب ها را بنویسند پس در واقع خدا این کتاب ها را نوشت وقتی داریم از نوشتن این کتاب توسط خدا صحبت می کنیم دو واژه وجود داره که لازم درک بکنیم اولیش واژه مکاشفه هست مکاشفه واژه ای عمومی که تمام راه های آشکارسازی حقایق توسط خدا به انسان رو شامل میشه خدا حقیقت رو توسط طبیعت بر انسان آشکار میکنه او حقیقت رو از طریق روح القدس شخصاً برای ما آشکار میکنه حقیقت رو از راههای زیادی بر ما آشکار میکنه. الهام اشاره به چیزی میکنه که الهیدانان به اون مکاشفه خاص میگن. کتاب مقدس مکاشفه خاص خداست. اون اول و آخر نداره. در طی زمانی حدود 1600 سال خدا مردانی رو برانگیخت تا این کتاب ها رو بنویسند. در حدود 90 بعد از میلاد وقتی یوحنا مکاشفه رو نوشت و وقتی مهر پایان بر اون مکاشفه نهاد اینطور گفت که اگر کسی چیزی بر این کتاب بیافزاید، خدا بلاهای نوشته شده در این کتاب را بر او خواهد افشود و از ما خواسته که چیزی از اون کم نکنی وقتی اون مکاشفه خاص تموم شد اون کتاب تموم شد اون مکاشفه خاص بود به این دلیلی که به اون مکاشفه خاص میگن گاهی این سوالی رو پیش میاره آیا خدا باز هم چیزی رو به طور خاص آشکار میکنه آیا خدا شخصا با من صحبت میکنه بله صحبت میکنه البته که صحبت میکنه بعد این سوال پیش میاد اگه چیزی به نام مکاشفه شخصی وجود داره کدوم مهمتره؟ مکاشفه خاص یا مکاشفه شخصی من هم به مکاشفه خاص ایمان دارم هم به مکاشفه شخصی ایمان دارم به اعتقاد من مکاشفه خاص همیشه بر مکاشفه شخصی ارجهیت داره اگه شخصی به عنوان شبان نزد من بیاد و بگه من میخوام از همسرم جدا بشم اگه موسی من منو میشناق فرمان دیگه ای میداد او قابل تحمل نیست میخوام از او جدا بشم اگه به اون شبان بگم بذر ازت سوالی بپرسم آیا زنت بی کرده او میگه نه نه اما میخوام ازش جدا بشم او رو دوست ندارم دیگه نمیخوام متأهل باشم و اگه به من بگه خدا به من گفته او رو ترک کنم اون وقت من خیلی با اقتدار به او میگم نه نه خدا اینو نگفته چون در مکاشفه خاص خدا این اجازه رو به تو نداده، او رو ترک کنی. او میگه به او بچسب. الهیدانان به اون ماندگاری در روابط زناشویی میگن. به این معنی که شما به او وصل شدید و نمیتونید از اون خلاص بشید. اون چیزیه که مکاشفه خاص میگه و مکاشفه شخصی نمیتونه مغایر مکاشفه خاص باشه. من اعتقاد زیادی به مکاشفه شخصی دارم اما فکر میکنم ما باید احتیاطات لازم رو بکنیم و اینجا لازمه به مواردی اشاره کنم. خیلی محتاط و مراقب باشید وقتی این کلمات رو به کار میبرید خدا به من گفت، اغلب اوقات وقتی میگیم خدا به من گفت، او واقعا به ما نگفته. ما فقط سلیقه خودمون و عقیده شخصی خودمون رو تا به حد مکاشفه بالا میبریم. ما حرف آخر رو میزنیم. یادم سالا قبل وقتی داشتیم یه کلیسا میساختیم، یه برنامه ساختمانی عالی داشتیم تا رسیدیم به مرحله انتخاب رنگ. در انتخاب رنگ ها بود که اختلاف نظرها شروع شد سعی می کردیم پس می بگیریم چه رنگی به کلیسا بزنیم. هر کسی نظر خودش رو داشت که چطور باشه؟ چه رنگی باشه؟ وقتی داشتیم جر و بحث می کردیم خانمی که دکوراتور بود یه شب توی جلسه به دیدن من اومد او تکه بزرگی قالی با الیاف بلند آورده بود. او صرفا نمی گفت فکر می کنم این رنگ برای صحنه زیبا باشه. بلکه می گفت خدا به من گفته که باید این رنگی باشه. من صراحتن باور نکردم که خدا به او گفته باشه من همیشه وقتی مردم اینو میگن باور نمیکنم فکر میکنم او فقط به سلیقه خودش به ایده خودش جلال میداد ما باید در این مورد خیلی مراقب باشیم و مراقب باشیم وقتی میگیم خدا به من گفت این مهمترین چیز در رابطه با کلمه الهام و کلمه مکاشفه هست. امروز به اعتقاد من دنیا بر کلماتی مثل عقلگرایی، دلیل منطق و بشردوسی خیلی تکیه میکنه وقتی شما مسیحی شدید، غیر اقلانی و بی منطق و نابخرت و یا بی آتفه نشدید. بر این عقیده هم که تفاوت بین ایمانداری که واقعا به کلام خدا ایمان داره، واقعا باور داره که اون کلام خداست و مردمی که تمام تمرکزشون بر دلیل و منطق و عقل و انسان دوستیه، دقیقا این هست که وقتی گاهی مردم از دلیل و منطق و اقلانیت حرف میزنن، اون رو جانشین مکاشفه می کنن. اونا می ما به مکاشفه نیاز نداریم. ما ذهن و فکر داریم من به شرایطی اعتقاد دارم که بر طبق کتاب مقدس فرق بین درست و غلط رو تشخیص میدم شرایطی که با اون در پارسایی تعلیم دیدیم مکاشفه است وقتی میگیم خدا اون کتاب ها رو نوشته این چیزیه که ما میگیم همونطور باید بگیم که انسان اون کتاب ها رو نوشته مردانی اون کتاب ها رو نوشتن که شاه، ماهیگیر، چوپان، سردار، باجگیر بودن اونا از هر قشتی بودن اگه داستان چگونگی تعلیف کتاب مقدس رو بخونید باید با درایدن شاعر موافق باشید که این سوال رو مطرح میکنه از کجا جز آسمان، مردانی بی در هنر، در سنینی متفاوت، از جاهای مختلف، چنین حقایقی رو در توافق با هم میبافند یا چطور و چرا همه برای فریب دادن ما توطعه کردن، دردهاشون رو نپرسیدیم، از معزهاشون قدردانی نکردیم، از منافعشون بهره نبردیم. و شاهد جوایزشون بودیم فکر می کنم این سوالی زیباست اگه شما این حقیقت رو ملاحظه کنید که مردان این کتابها رو نوشتن، لازمه که تحقیق کوچکی بکنید و به حقایق و اطلاعاتی برسید از اینکه چطور این معجزات به وقوع پیوست این شما رو به پاسخ بعضی از سوالات میرسونه همونطور طور که پیشنهاد کردیم مثلا تدوین کتابها. اگه تحقیق کنید خواهید فهمید که کتابهای عهد قدیم همه توسط مردانی مثل ازرا تدوین شدند که به اونها کاتب می گفتند در حدود سال 100 میلادی در شورای به نام شورای یامنیا همه تثبیت شدند عملا این کتابها حدود 300 یا 400 سال قبل از اون گردآوری شدند کتابهای عهد جدید در حدود سال 692 میلادی توسط شورای دیگری به نام شورای ترولان گردآوری و تدوین و در یک جا تثبیت شدند در مورد کتاب‌های عهد قدیم مهمترین چیز به نظر می‌رسید که نویسنده ی کتاب و اعتبار او به عنوان نبی یا کاتب است. در مورد کتاب‌های عهد جدید معیارهایی بود که با اونها این کتابها سنجیده می‌شدند. به اون قانون شعر می‌گفتند و شامل سه بخش بود. سه بخش اینها بودند. آیا این کتاب توسط یک رسول نوشته شده یا یکی از بستگان نزدیک یک رسول؟ آیا کتاب محتوای روحانی داره که بتونه ایمانداران رو تغذیه و نیازشون رو تأمین بکنه آیا اونا متفقن با این چیزها موافقن این کتابها خیلی با دقت انتخاب شدن و در عهد جدید قرار گرفتن خیلی مردم درباره آپوکریپا سوال میکنند. آپوکریپا در سال 1546 میلادی در خلال سالهای اصلاحات توسط کلیسای کاتولیک روم انتخاب و در مجموعه کتاب مقدس قرار گرفت وقتی انتخاب اصلی انجام شد این کتابها رد شدند چیز دیگه ای که باید در طی بررسی تاریخ کتاب مقدس بهش فکر کنید، زبانی است که کتاب مقدس به اون زبان نوشته شده. همه میدونیم که عهد قدیم به زبان ابری نوشته شده و عهد جدید به زبان یونانی نوشته شده. اگه شما خواهید خادم بشید، باید کمی ابری و کمی یونانی بدونید. چون این کتابها به زبان فارسی نوشته نشده، از اینو پژوهان کتاب مقدس اغلب این زبان‌های اصلی رو یاد می‌گیرن. مطلب دیگه راجع به تاریخ کتاب مقدس از جنبه تعلیف انسانی اون نگهداری اون هست. حالا فکر کنید چند وقت پیش این کتاب ها نوشته شدن. این کتاب ها باید نسخه برداری و نگهداری می شددن. قدر مسلم ما هیچ کدام از نسخه های اصلی رو نداریم. چون کاغذ اونقدر قدمت نداره. ما نسخه های بسیار خوبی داریم برای اینکه کتاب مقدس به زبان فارسی داشته باشید، اون باید ترجمه می شده، اون ترجمه هم تاریخچه داره. چون کاغذ اونقدر قدمت نداره. اما نوصقه های بسیار خوبی داریم برای اینکه کتاب مقدس به زبان فارسی داشته باشید اون باید ترجمه می شده اون ترجمه هم تاریخچه‌ای داره فکر می کنم خیلی مفید خواهد بود که از یک دایره المعارف به اون تاریخچه نگاهی بندازیم که ببینیم کتاب مقدس به زبان امروزی چگونه ترجمه شده من دوست بسیار خوبی دارم که از بلند پایگان دولته او از نوجوانی به مسیحیت مأمن او این دوره رو گذرونده او کل دوره رو با ضبط صوت گذروند نوار ها و یادداشت ها رو میگیره و در حالی که کتاب مقدس رو با من بررسی میکرد به موعظه یک شبان هم در کلیسایی بزرگ گوش میکرد این مرد برداشت خیلی زیرانه کرد در حالی که هفته ها بود که به کتاب مقدس از نوار گوش میداد و کتاب مقدس رو برای اولین بار در زندگیش می‌خوند، به شبانش هم گوش می کرد که می گفت بعضی از مردم در کلیسا که کتاب مقدس رو میدونن به اون ایمان ندارند و کسانی که به کتاب مقدس ایمان دارن، کتاب مقدس رو نمی‌دونن. او به این نتیجه رسید که من به کتاب مقدس ایمان دارم و حقایق اون رو خواهم آمخت او به دانشکده رفت و یک دوره یک ساله رو تموم کرد و حالا به کتاب مقدس ایمان داره و کتاب مقدس رو میدونه. فکر می کنم او برداشت خوبی کرد. نقطه بسیار مهم دیگه در حالی که سوابق کتاب مقدس رو بررسی می کنید، این سوال در مورد الهام هست. از کجا میدونید کتاب مقدس کلام وحی خداست؟ ایمان دارم اینسا گفت فقط یک راه برای دارستنش هست. اگه کسی تصمیم بگیره انجام بده، او میتونه بفهمه. شما با یاد گرفتن زبان سامی یا رفتن به دانشکده الهیات نمیتونید ثابت کنید کتاب مقدس کلام خداست. به قول عیسی، اگه با این اشتیاق به کلام خدا نزدیک بشید که هرچی میگه انجام بدید، ثابت میکنید که اون کلام خداست. وقتی چیزی رو که میگه انجام بدید، اون چنون تحول عظیمی در زندگی شما به وجود میاره که اون وقت میگید این کلام خداست. این باید کلام خدا باشه روی کرده ایسا همیشه بر این مبنا بود وقتی شاگردان رو ملاقات کرد برگشت و دید که دنبالش میاین. پرسید چی میخواد؟ اونا گفتن استاد کجا زندگی میکن؟ و او در جواب گفت بیایید و ببینید کتاب مقدس میگه اونا اومدن و دیدن کجا زندگی میکنه و با او زندگی کردن همه ما بقیهش رو میدونیم اونا به خاطر او مردن؟ به خاطر چیزی که دیدند وقتی که به بیایید و ببینید متعهد شدن. این روشی بود که عیسی با اونا ثابت کرد که کلام او کلام خدا بود او گفت بیایید و ببینید فکران همیشه میگن هر وقت دونستم انجام خواهم داد وقتی با منطق به تو برسم اون وقت با اراده تو را پیروی خواهم کرد فکر منو قانع کن اراده ام رو تسلیم خواهم کرد عیسی همیشه به این میگه نه راه دیگش درسته شما ارادت رو تسلیم کن ذهن تو قانع خواهد شد اگه این کارو کردی عیسی گفته اونو خواهی دونست مردم سالیانه دراز میگفتند دیدن باور کردنه اما عیسی و کتاب مقدس کرارن به ما میگن نه باور کردن دیدنه اینجوری میتونید ثابت کنید که کتاب مقدس کلام وحی خداست باید تسلیم بشید و بیایید و ببینید و وقتی اومدید و دیدید با سر سپرده گی و اراده خدا رو به محض اینکه از کلام خدا باز میشه انجام میدید. انجام اراده خدا به محض اینکه از کلام خدا آشکار میشه به دنبال آگاهی یا اعتقاد راسخ بر این واقعیته که این در واقع کلام خداست. دوباره همون که عیسی حقایقی رو از کتاب مقدس با رسولان در میان گذاشت که کلام را برای اونها باز کرد. امیدوارم که این درس‌های کتاب مقدس که با شما در میون گذاشتم کتاب مقدس رو برای شما باز کنه نه تنها برای اینکه اونو بهتر درد کنید بلکه برای اینکه زندگیتونو تبدیل کنه خب امروز هم وقت ما به پایان رسید و وقت بسیار ارزشمندی بود یادآوری می‌کنم که سوالات رو به دقت بخونید و آیه 21 از باب یک دوم پتروس رو حفظ کنید منتظر جلسه بعد که کلام خدا را با هم بررسی خواهیم کرد هستم امیدوارم شما هم منتظر باشید. دوستای خوبم، متشکرم که دانشوی وفاداری برای دانشکده کوچک کتاب مقدس بودین. ما سفرمون رو در کلام خدا آغاز کردیم و هنوز وقت باقیه که دوستان و اقوام خودتون رو دعوت کنید تا به ما بپیوندن. ارزش این دوره ابدی هست، همچنان که به شما کمک میکنه حقایق ابدی و روحانی کلام خدا رو یاد بگیرین و بپذیرین. مچکریم که ترتیبی دادین جلسه یاینده با ما باشین تا با هم کلام خدا رو بیاموزیم.